مصنوی معنوی مولوی برنامه 103 سوم. نمیت شدن موسی علیه السلام از ایمان فرعون بعد تاثیر کردن سخن هامان در دل فرعون. گفت: موسی لطف بنمود موجود خود خداوندید را روزی نبود. آن خداوندی که نبود راستین مرورا را نه دان نه آستین. آن خداوندی که دزدیده بود، به دل و به جان و به دیده بود. آن خداوندی که دادندت عوام، باز بستانند از تو همچوام ده خداوندی آریت به حق، تا خداوندیت بخشد متفق. منازعت امیران عرب با مصطفی علیه السلام که ملک را مقاسمت کن با ما تا نزاع نباشد و جواب فرمودن مصطفی علیه السلام که من معمورم در این امارت و بحث ایشان از طرفین. آن امیران عرب گرد آمدند، نزد پیغمبر منازع می شدند که تو میری هر یک از ما هم امیر، بخش کن این ملکو، بخش خود بگیر هر یکی در بخش خود انصاف جو، تو ز بخش ما دو دست خود بشو گفت میری مرمرا حق داده است سروری و امر مطلق داده است کین قران احمد است و دور او هین بگیرد امر او را اتقو قوم گفتندش که ما هم زان قضا حاکمیمو داد امیریمان خدا گفت لیکن مرمرا حق ملک داد مر شما را عاریت از بهر زاد میری من تا قیامت باقی است میری آریتی خواهد شکست قوم گفتند ای امیر افزون مگو چیست حجت بر فزونجویی تو در زمان ابر برآمد زمر مور سیل آمد گشت آن اطراف پر رو به شهر آورد سیل بس مهیب اهل شهر افغان کنان جمله رعیب گفت پیغمبر که وقت امتحان آمدکنون تا گمان گردد ایان هر امیر نیزه خود درف گند تا شود در امتحان آن سیل بند پس قضیب انداخت در وای مستفا آن قذیب معجز فرمانروا ها را همچو خاشاک ربود آب تیز سیل پرجوش عنود نیزهها گم گشت جمله وان قذیب بر سر آب ایستاده چون رقیب ز آن قذیب آن سیل زفت رو بگردانید و آن سیلاب رفت چون بدیدند از وای آن امر عظیم پس مقر گشتند آن میران زبیم جز سه کس که حقد ایشان چیره بود ساهرش گفتند و کاهن از جهود ملک بر بسته چنان باشد ضعیف، ملک بر رسته چنین باشد شریف نیزه ها را گر ندیدی با قضیب نامشان بین نام او بین ای نجیب نامشان را سیل تیز مرگ برد نام او و دولت تیزش نمارد پنج نوبت میزنندش دوام همچنین هر روز تا روز قیام گر تو را عقل است کردم لطف ها ور خری آوردم خر را اصا آنچنان زین آخرت بیرون کنم که از گوش و سرت پرخون کنم اندرین این آخر خران و مردمان می نیابند از جفای تو امان نک اصا آبردم بهر ادب هر خره را کو نباشد مستحب اجدهای می شود در قهر تو کشده های ای در فعل خو اجده های کوهی تو بیامان، لیک بنگر اجده های آسمان این آسا از دوزخ آمد چاشنی که هلا بگریز اندر روشنی ورنه درمانی تو در دندان من مخلصت نبود ز دربندان من این عصای بود این دم اجده هاست. تا نگویی دوزخ یزدان کجاست در بیان آن که شناسای قدرت حق نپرسد که بهشت و دوزخ کجاست هر کجا خواهد خدا دوزخ کند اوج را بر مرغ دام و فخ کند دندانت براید دردها تا بگویی دوزخ است و اجدها. ها یا کند آب دهانت را اصل تا بگویی که بهشت است و حلال از بون دندان برو یا ند شکر تا بدانی قوت حکم قدر پس به دندان به گناهان را مگز فکر کن از ضربت نامحترز نیل را بر قبطیان حق خون کند سبتیان را از بلا محسون کند تا بدانی پیش حق تمییز هست در میان هوشیار راه و مست نیل تمیز از خدا آموخته است که گشادین را با آن را سخت بست لطف او عاقل کند مرنیل را، قهر او ابله کند قابیل را. در جمادات از کرم عقل آفرید، عقل از عاقل به قهر خود برید. در جماد از لطف عقل شد پدید، و از نکال از آقلان دانش رمید. عقل چون باران به با امر آن جا بریخت عقل انسو خشم حق دید و گریخت ابر و خورشید و مه و نجم بلند جمله بر ترتیب آیند و روند هر یکی ناید مگر در وقت خیش که نه پس معاونت ذهن و نه پیش چون نکردی فهم این را زنبیا دانش آوردند در سنگ و عصا تا جمادات دیگر را بی لباس چون عصا و سنگ داری از قیاس طاعت سنگ و عصی ظاهر شود و از جمادات دگر مخبر شود که زیزدان آگه ما و ما همه نی اتفاق زایی همچو آب نیل دانی وقت غرق، کو میان هر دو امت کرد فرق. چون زمین دانیش دانا وقت خصف، در حق قارون که قهرش کرد و نصف. چون قمر که امر بشنید و شتافت پس دو نیمه گشت بر چرخ و شکافت چون درخت و سنگ کن در هر مقام مصطفی را کرده ظاهر السلام جواب دهری که منکر الوهیت است و عالم را قدیم می گوید. دی یکی می گفت عالم حادث است. فانی است این چرخ و حقش بارس است. فلسفی گفت چون دانی حدوث، حادثی ابر چون داند غیوس ذره خود نیستی از انقلاب تو چه میدانی حدوس آفتاب کرمک کندرهدث باشد دفین کی بداند آخر و بدو زمین این به تقلید از پدر ای از حماقت اندرین ای چیست برهان بر حدوث این بگو ورنه خاموش کن فزونگویی مجو گفت دیدم اندرین بحر عمیق بحث می کردند روز دو فریق در جدال و در خسام و در سطو گشت هنگامه دو کس گروه من بسوی جمع هنگامه شدم اطلاع از حال ایشان بستدم آن یکی می گفت گردون فانی است بیگمان این را بانی است واندگر گفت این قدیم و بیکه است نیستش بانی و یابانی وی است گفت منکر گشته ای خلاق را روز و شب آرنده و رزاق را گفت بی برهان نخواهم من شنید آنچه گول آن به تقلید گزید. هین بیاور حجت و برهان که من نشنوم بی حجت این را در زمان گفت حجت در درون جانم است در درون جان نهان برهانم است تو نمیبینی هلال حلال از ضعف چشم من همی بینم مکن بر من تو خشم گفتگو بسیار گشت و خلق گیج در سر و پایان این چرخ بسیج گفت را در درونم حجت است بر حدوث آسمانم آیت است من یقین دارم نشانش آن بود یقین دان را که در آتش رود در زبان می ناید آن حجت بدان همچو حال سر عشق آشقان نیست پیدا سر گفت و گوی من جسک زردی و نزاری روی من اشک و خون بر رخ روانه می دود. حجت حسن و جمالش می شود گفت من اینها ندانم حجته که بود در پیش آمه آیته گفت چون قلب و نقد دمزنند که تو قلبی من نکویم ارجمند هست آتش امتحان آخرین کندر آتش در فتند این دو قرین آم و خاص از حالشان عالم شوند، از گمان و شک سوی ایقان روند. آب و آتش آمد ای جان امتحان نقد و قلب را که آن باشد نهان. تا من و تو هر دو در آتش رویم، حجت باقی حیرانان شویم، تا من و تو هر دو در بحر افتیم که من و تو این گروه را آیتیم همچنان کردند و در آتش شدند هر دو خود را بر تف آتش زدند آن خداگوینده مرد مدعی رست و سوزید اندر آتش آن از ما از زن بشنوین اعلام را کوری افزون روان خام را که نسوزیده است این نام از اجل کشمسما صدر بودست و اجل ست هزاران زین رهان اندر قران بردریده پرده های منکران چون گرو بستند غالب شد ثواب در دوام و موجزات و در جواب فهم کردم کانکه دم دمزد از سبق و از حدوث چرخ پیروز است و حق حجت منکر هماره زرد رو یک نشان بر صدق آن انکار کو یک مناره در سنای منکران کو در این عالم که تا باشد نشان منبر کو که بر آنجا مخبره یاد آرد روزگار منکره روی دینار و درم از نامشان تا قیامت میدهد زین حق نشان سکه شاهان همه گردد دگر سکه احمد ببین تا مستقر بر رخ نقره و یا روی زره بانما بر سکه نام منکره خود مگیر این معجزه چون آفتاب سد زبان بین نام او ام الکتاب کتاب زهرنی کس را که یک حرف آن یا بدزدد یا فضاید در بیان یار غالب شو که تا غالب شوی یار مغلوبان مشو هین ای غوی. حجت منکر همین آمد که من غیر این ظاهر نمی بینم وطن. هیچ نندی که هر جا ظاهر است. آن زهکمت های پنهان مخبر است. فایده هر ظاهر خود باطن است. همچون نف اندر دواها تفسیر این آیت که و ما خلقن سماوات والعرض و ما بینهما الا بالحق نیا فریدمشان بهر همین که شما میبینید بلکه بهر معنی و حکمت باقیه که شما نمی بینید آن را. هیچ نقاش نگارد زین نقش بی امید نفع بهر عین نقش بلکه بهر مهمانان و کهان که بفرجه وارهند از اندهان شادی بچگان و یاد دوستان دوستان رفترا از نقش آن هیچ کوزگر کند کوزه شتاب بهر عین کوزه نه بر بوی آب هیچ کاساگر کند کاسه تمام بهر عین کاسه نه بهر تام هیچ خطات نوی خط به فن بحر عین خط نه بهر خواندن نقش ظاهر بحر نقش غایب است وان برای غایب دیگر ببست تا سوم م دهم بر می شمر این فواید را به مقدار نظر همچو بازی های شطرنجی پسر فایده هر لب در تالی نگر، این نهادند بهر آن لب نهان، وان برای آن و آن بهره فلان. همچنین دیده جهاتن در جهات، در پی هم تا رسی در برد و مات. اول از بهره دوم باشد چنان که شدن بر پایه های نردبان، وان دوم بهر سوم میدان تمام تا رسی تا پایه پایه تا ببام شهوت خوردن ز بهر آنمنی وانمنی از بهر نسل و روشنی کاند بینش می نبیند غیر این عقل او بی سیر چون نبت زمین نبت را چه خوانده چه ناخوانده ای هست پای او ب گل درماندی گر سرش جن بد به سیر باد رو تو به سر غره مشو آن سرش گوید سمعنا ای سبا پای او گوید اسینا خلنا چون نداند سیر میراند چو آم بر توکل می نهد چون کور گام بر توکل تا چه آید در نبرد چون توکل کردن از هاب نرد وان نظرهایی که آن افسرده نیست جز رونده و جز درنده پرده نیست آنچه در ده سال خواهد آمدن این زمان بیند به چشم خیشتن همچنین هر کس به اندازه نظر غیب و مستقبل ببیند خیر و شر. چون صد پیش و صد پس نماند شد گزاره چشم و لوح غیب خواند، چون نظر پس کرد تا بد وجود ماجرا و آغاز هستی رو نمود. بحث املاک زمین با کبریا در خلیفه کردن بابای ما چون نظر در پیش افکند و بدید آنچه خواهد بود تا محشر پدید پس ز پس می بیند و تا اصل اصل پیش می بیند ایان تا روز فصل هرکس اندازه راوشان دلی غیب را بیند به قدر سیقلی هر که سیقل بیش کرد او بیش دید بیشتر آمد بر او صورت پدید گر تو گوی کان فضل خداست نیز این توفیق سیقل زان اتاست قدر همت باشد آن جهد و دعا لیس للانسان الا ماسعا واهب همت خداوند است و بس همت شاهی ندارد هیچ خس نیست تخصیص خدا کس را بکار مانع توع و مراد و اختیار لیک چون رنج دهد بدبخت را او گریزاند به کفران رخت را. نیک بختی را چو حق رنج دهد، رخت را نزدیکتر وامینهد. بددلان از بیم جان در کارزار کرده اسباب حزیمت اختیار. پردلان در جنگ هم از بیم جان حمله کرده سوی صف دشمنان، رستمان را ترس و غم و پیش بارد همزه ترسان بدلن در خیش مارد چون مهک آمد بلا و بیم جان زان پدید آید شجا از هر جبان